جوان روپوشش را رو پوشید تایه یقه ها را باز کرد و سینهاش را به آنها پوشاند و هولااش را توی جیبش فرو کرد. قایق لاستیکی ترکی خیس را که اسباب زحمت بود بلند کرد زیر بغلش گذاشت و تک و تنها از روی شنهای نرم و داغ سلانه سلانه به طرف هتل راه افتاد طبقه همکف را مدیر هتل در اختیار کسانی گذاشته بود که آب تنی می میکردند در آنجا زنی که بینیاش را پماد اکسید روی مالیده بود همراه جوان وارد آسانسور شد وقتی آسانسور به راه افتاد جوان به زن گفت میبینم به پاهای من زل زدین زن گفت چی فرمودین گفتم میبینم به پاهای من زل زدین زن گفت عذر میخوام من تصادفاً زمین را نگاه میکردم و رویش را به درهای آسانسور کرد. جوان گفت اگه دلتون میخواد پاهای منو نگاه کنین، نگاه کنین. اما دیگه خبر مرگتون دزدکی این کار نکنین. زن رنگ به دختر متصدی آسانسور گفت لطفا همینجا منو پیاده کنین. درهای آسانسور باز شد و زن بی آنکه پشت سرش رو نگاه کند بیرون رفت. جوان گفت من مثل همه دو پای معمولی دارم و نمیفهمم چرا همه باید بهشون خیره بشن. طبقه پنجم لطفا. کلید اتاقش را از جیب روپوشش بیرون آورد. طبقی پنجم پیاده شد. طول راه رو را پیمود و وارد اتاق پانسد و شد. توی اتاق بوی تیماج چمدان های نو و مایه پاک کردن لاک ناخن می آمد. به زن جوانی که روی یکی از دو تختی یک شکل خوابیده بود نگاهی انداخت. سپس به طرف یکی از چمدان ها رفت. درش را باز کرد. و از زیر یک دست شرت زیر زیرپیاهنی یک هفتیر خودکار کالیبر 765 صدم اورتگیز بیرون آورد خشاب را در آورد نگاهی به آن انداخت سپس به جای خود برگردند زامن را کشید آن وقت جلو و روی تخت خالی نشست نگاهی به زن جوان انداخت اسلحه را نشانه گرفت و گولهای به شقیقه راست خود شلیک کرد